دوستان وقت گلان به که به اشرت کوشین سخن اهل دل استین و به جان بنیوشین نیست در کس کرم و وقت طرف می گذرد چاره آن است که سجاده به می بفروشین خوش هواییست فرح بخش خدایا بفرست نازنینی که به روگش می گلگون نوشین ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنهره است چون از این قصه ننالیم و چرا نخروشیم گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی لا جرم ذاتش هرمان و حبست می جوشیم می کشیم از قده لاله شرابی موهوم چشم بد دور که بی مترب و می مدهوشیم حافظ هاو این حال عجب با توان گفت که ما بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم